می‌کنید که دختر دو عظمین به گمود زرد رو می‌خونید؟ به افثان گفتن دختر پادشای عظمین دوم. چون گریبان کوه و دامن دشت از ترازوی سوق پرزر گشت روز یک شمبه آن چراق جهان زیر زر شد چو آفداب نهان جام زر برگرب چون جمشی تاج زر برنهاد چون خرسی بست چون زرد گل به رعنایی کهربا نگین سفرایی زرفشانان به زرد گنبت شد تا یکی خشدلیش در ست شد خرمی را در او نهاد بنا به نشات می و نبای قناب. چون شب آمد نشب که ناز عاشقان خلوت خلوتساز شهر بدون شم اشک گفت تا کند لعل با تبرزد جو خواست تا سازد از غناسازی در چنون گنبدی خوش چون ز فرمان شهر گزیر نبود عذر با ناز دلپذیر نبود گفت رومی عروس چینی ناز که خداوند روم و چین و تراز تو شدی زنددار جان ملوک از نصروت خدایگان ملوک هر که جزبندگی رای کند سر خود را سبیل پای کند چون دعا را گزارشی سره کرد دم خود را بخور مجمره کرد اولا که توجه فن که یه رو پیش میگن سانده یعنی روز خوش از میون تمام روزای هفته اینا معلومه کدوم به کدوم ماندی یعنی روز ما، ساندی یعنی روز فرشت، ونسدی یعنی روز دنس، مثلا. بلد بلد. بعد فقط در فرانسه یه خود تغییر کرده ساتر به یعنی روز زحل، ساتر یعنی زحل. در فرانسه روز یکشنبه رو گذاشتن دیماش یعنی روز خدا بنابراین شنبه رو از دو حل گرفتن تحویل خورشید بده شده سامدی، سامدی یعنی روز خورشید همون سانده ولی به هر حال این روزا همش معینه مثلا در فرانسه پنشنبه از جدی جدی یعنی روز جوپیته روز مشتری هر کدوم از این هفت سیاره یکی از این روزای هفته متعلق به یک بلیزم متعلق به اون متعلقه به متعلقه متعلق به خورشید و متعلق به روزیه هم زر به همین دلیل هم در رساله های کیمیاگری اونا برای اینکه عامه ناس نفهمند که اینا چی میگن هیچ وقت نمیگن زر و سیم میگه شمس و قمر شمس یعنی طلا قمر هم یعنی نقره میگه چون گریبان کوه و دامن دشت از ترازو بی سوخ پر پول رو نقض میکردم ثابت سه کار شما دست میزدن نه حیارش معلوم بود نه وزنه و شما که محاید این پول بگیریم باید یک کسی رو که ناقد بهش میگفتن یا نفعات بهش میگفتن سر بود زرگر بود بیا دونه دونه اینا رو محک بزن این حیارش درسته اگه میگه این طلاعی نوده نوده یا نه. بعدم بکشه او تراز بود توی این سعدی میگه که هرکده را زر در ترازو سور در باز زر در ترازو دلیلش اینه که آخرین ای که دیگه بلافاصل پول و تعبیل طرف میدادن موقعی بود که تو ترازو یعنی اول محق بودن میخود یار میره خون برد میگوی نه رو قبول نمید اون قسمتی که قابل قبولشون میداشیم بعد که آماده میشه یعنی همش ایارش معلوم شد بعد میکشید میکشید بعض هم اگه درست بود میداد تعبیل ترم که میگه که چون گریبان کوه و دامن دشت از ترازو صبح پر گشت در ضمن این معنی شوهای زرین آفتاب ها روز نورانی شد و زرین چون گریبان کوه و دامن دشت از ترازوگ صبح پر ذر گشت روز یک شنبه آن چراغ جهان زیر زر شد تو آفتاب نهان یعنی تناس جام زر برگرفت چون جمشید تاج زر برناهات چون خورشید. جمشید جم یعنی دقل هنوزم در پیرجند در خراسون بچه دقل رو میگن جمل در کرمان میگن جمولو در فرانسه هم بش میگن جمل یا ژیمو، یعنی واسه دو غلو. اما دو قلو هم که ما بر قاعده ش سه قلوب و چهار قلو هم ساختیم این اصلا کلمه اینجوری نیست، اصلا ساختمونش این نیست یعنی دو جز کلمه هست دو و لو دو قلو یعنی تواند میخواد سه تا باشه، میخواد چهار تا باشه، هرکی باشه یعنی بچه که با هم دنیا ما ما کردیم که اولیش دوست بعد هم غلوه بعد سه و چهار غلوه هم صافتیم و جمشید با یک خواهر گفتن به دنیا آمد. و خواهرش این در اساطیر هند هست به دلیل این که مادرشون یک گناهی به درگاه خدایان مرتکب شده بود و یه بار قضای خدایان رو دین که به حضور اون عرضه بداره خودش خورده بود خدایان به او غذب کردن دخترش مرده بود دنیا پسر زنده دخترش مرده پاید مادر ناراحت شد و توبه کرد و انابه کرد و گریه کرد و زاری کرد دفتن که تنها راهی که ممکنه این بچه زنده بشه این است که جم یعنی پسره قبول بکنه که بعد از مدتی زندگی کردن بمیره و بره پادشاه کشور مردگان بشه تا اون روز از هم مردهی کسی نمیمورده و جمع شید اول کسی است که مرد و بعد رفت و پادشاه کشور مردگان بعد در وداف شیدم نداره فقط جم یعنی جمم برای اینکه شید به معنی تابناک و روشنه ما میگیم جم روشن اونها جم رو جم تاریخ میدیم و پادشاه کشور ظلمات حال جم یعنی بچه دو غلو شیدم یعنی تابناک یعنی جم تابناک در عوستاه هست یه مخشایت هست شده جمشید ولی در ودا فقط گمه هست بعد به ترتیب اقوام ایرانی وقتی اقوام اروپایی ایرانی و از هندی جدا شدند ایرانی ها هی ای مرتبی جمشیده بردن بالا هندی های ها مرتب جمشیده بردن پایین مثل احورا و دعوه دعوه خدای هندیا ها سنو دفت بشینی کن همون ترفاشر اونا دعیور از تحت خدایی کشتن پایین احورا رو بردن بالا شد احورا مرزا شد خدا همدی ها رو به قول خودتون از خدایی از کسن و دعیورمون دعیور هنوز هم در زبان هندو اروپایی و این خدا، لفظ دیوان یعنی الهی خدایی دیدینیتی یعنی خدایی در فرانسه خدا رو میگهن دیو از همین دعیور ولی در ایران دی احریمن شیطان خدای بد ایک یکی از چیزایی هم که به جمشید نسبت دادن اینه که اول بار آداب میگوساری و میخوردن و مجلس شراب نهادن و ساهیدری و این آداب رسول میگوساری رو جمشید مقرر اینه که میگه جام زرب برگره چون جمشید تاج بر نهاد خوش. جام ظاهراً پیمانه ای بوده که یا از فلز بوده گویا از بلور و شیشه اونام جام رو می ساختن. و قده نه قده ظاهراً از گل بوده و اختفال بوده و بوده و موقع خاصه بوده قده بس چون رعنایی کهربا برمدین سفرایی سفرایی باز یعنی زردنگی اصبر یعنی زرد کهربا هم زردنگی زرفشانان به زرد گمبرد شد تا یکی خوشتلیش در صد شد خرمی را در اونها بنا و نشاط می و نوای غنا چون شب آمد، نه کجله که ناز پرده آشقان خلوتساز خب، رو خدمت خانوم رو شد بدان شم اشه کرفشان گفت تا خونت لعلبا تبرزت دو تو خانواده های متعین و متشخص رو دون پادشاه اوینا رو از موم می و موم از اصل جدا شد بنابراین شم اشه کرفشان که میگه اشاره به اون اصل که جز امومه داره در این حال مرادش از شمشه که افشان اون زن زیباست که قرار خوشتخن هم باشه که میگه لعلش رو با تبرزد رفت کنه لعلش مراد لبشه تبرزد هم یعنی نبات تا مراد سخنشی تا سازت از قناسازی در چنان گمبدی خوشاوازی یعنی اینه که به این ترتیب با حرف زدنش کیفشار تکنیر کنه دیگه خوشاوازی کنه در اون گمبد چون زش فربان شهر گذیر نبود عذر با ناز دلپذیر نبود گفت رومی عروس چینی ناز که خداوند روم و چین و تراز. پرازم ای که از شهر های ایست بوده. تو شدی زنددار جان ملوک یعنی جان همه پاچان در اختیار توست و به لطف تو اینا رو زنده داشتی از زن از روح نش به معنی یاری از زن از روح یعنی یاری او گرامی است جز علقاب دهاب اینا از زن از روح خدایگان ملوک این یعنی رئیس و بزرگتر همه پادشاهان. هر که جزبندگی ترای کند سر خود را سبیل پای کند. هر که جزبندگی تو فکری بکنه سر خود زیر پای انداخته. چون دوها را گزارشی سره کرد گزارش به معنی پرجمه و تفسیر و توضیحه. درست معادل کماکر فرانسه یا کمیچی انگلیسی گزارش است. سرن یعنی خیلی عالی چون دعا را گزارشی سره کرد دم خود را بخور مجمره کرد یعنی شروع کرد با نفس خودش به عطف پاسی مراد اینی که قصه رو گرد شهری ز شهرهای عراق داشت شاهی ز شهریاران تا آفتابی و آلم افروزی خوب چون نوبهار نوروزی از هنر هرچه در شما راید و هنرمند را به کاراید داشت با آن همه هنرمندی دل نهاد از جهان به خورسندی خونده بود از حساب خویش که از زنانش خصومت آید بیش زن نمیخواست از چنان خطری تا نبیند بلا و درد سری همچنان مدتی به تنهایی ساخ با یکتنی و یکدایی چاره آن شد که چار و ناچارش مهربانی بود سزاوارش چند گونه کنیز خوب خرید خدمت کس سزای خیش ندید هر یکی تا به هفته کم و بیش پای بیرون نهادی از هد خیش سر برفراختی به خاتونی خواستی گنجهای قارونی بود در خانه گوش پشتی پیر زنی از ابلهان ابلهگیر هر کنیزی که شخ خریدی زود پیرزن در گذاب بی بی سود خندی اون نو خریده را از ناز بانوی روم و نازنین تراز چون کنیز آن غرور بی, بی بیش باز مندیز رسم خدمت خیش ای بسا بلفزول یاران آورت کبر در پرستاران من جنیقی به زیور و زی خانه بیرون کنه عیال پری شاه چندان که جهد بیش نمود یک کنیزک به جای خیش نبود هر کرا جامعی زه مهر بدوخ چون که بعد مهر بید باز برود دست خیلی دیگی فقط در بیت چاران داشت با آن همه هنرمندی هرچه لازم بود داشت میگه که از هنر هرچه در شمارایت با هنرمند را به کارایت داشت با آن همه هنرمندی دل نهاد از جهان به خورسندی خورسندی یعنی قناعت بعد میگه که طالبین ها بهش گفته بودن که از زنای در هر یو این است که زن کانده بودش، صاحب طالب، هیچ که از زنان هاش خطومت زن نمی خواست. از چنان خطری این خواستن به معنی گاری کردن و زنگ گرفتن این خواستن به معنی مثل حالایی که به کار زن نمی خواست. یعنی زن نمیگیره گره خواستار ازدواجی با زنی نمی شد مرادش نید همچنان مدتی به تنهایی ساخو یک تنیم یک تایی چارا که چارو ناچارش مهربانی بود با سذابات خوب خور من تنیم زیبه و ای کنیز خرید ولی دیدید که پیرزنی بود که پوری به کنیزی میگفت ولی تو رو دوست داره نیمون تو خانومی تو فلانی زنک یابو برش میگه این است که میگه که بسیار کنیز خرید ولی هیچ کدوم سزا سزای خدمت خودش ندید چرا؟ هر یکی تا به هفته ای کم پیش پای بیرون نهاد آف خدمتگار بود زر خرید بود تا شب می‌گفتش که باری کلام مثل ما خانم خوشگرد یا دست بسراز می‌چوید روش بالا می‌گفت به خصوص که او پیر اونجا بود یکی اینا رو شاید به صلاح خودش یکی اینا رو رد می‌کرده می هر یکی تا به هفته کم و بیش پای بیرون نهادی از حد خیش سر بر افراختی به خاتونی خواستی جنج‌های قارونی دلیلش او در خانه گون زنی از ابلهان ابلهگیر هم ابله بود هم ابلهگیر بود تر می کرد مردمون خودش هم ابله بود داریم که این راه دروف نبود که این زن میرفت. هر کنیزی که شهر خریدی زود پیردن در گزاف دیدیستون گزاف به منی مبالفه کردن و حافظی و بیزد زیاده از حد کسی حد دادنه اما در معامله معامله چکی رو میگن گن گزاف ممکنه بعضی از کسانی که چنین معامله می کنن بصیرت داشته باشند و درست بکنن حد زن و غیرات بازویش ولی اغلب این معامله این که از طرف این ناراضی می رنگه اینه که در کتاب تجارت هم در فقر اصرار شده که کمتر چکی معامله کنیم. این گزافتی میگه معنی معامله چکی را بره و همین یعنی میگه در گزافت سود بود هر کنیزی که شهر خریدی زود تیرزن در گذاب دیدی صوفاند یا نو خریده را از ناز با عنوی روم و نازنین تراز چون کنیزان قرور قرورم یعنی فریده مقرورم که خودپسنده یعنی بیش از حد به خودش اعتقاد داره و آدم بهتر از هر کسی دیگه باید عیبای خودش رو بدونی اگه نبینه قریب خورده ترین آدم روزگاره چون کنیز آن گروه دیدی بیش باز من دیدی رسم ای بس آب بلفزول تزیاران آورد کبر در پرستاقان فزول اصلا فضل یعنی برطلیم فزول یعنی زیادی اصلیش آدمی هم که میگن فزولا یعنی زیادتر از اون اندازه که قرار عرف بزنه حرف بزنه و بولفوزول یعنی آدمی که حرف زیادی میزنه میگه این بوزول یا این آدم مثل منجنیق خیلی خوشگلیست و این به این ترتیب اون زن میذره تو این منجنیق که ظاهرش هم خیلی آقاسم میگه به بچه خانومی هستی تو همچنین تو کسی همچنی، همچنی، همچنی، همچنی، همچنی، همچنی مثل تو اصلا ندیده اون سر، مثل سرش هست ولی حاصل منجنیق چیه؟ بردش میگه طرف می می دیده منجنی ریب و ود به زیبر و زیب خانه ویرانکون ایال پروید منجنی کلمه یونانیست از همین کلمه است علم مکانیک. او چندان که جهت نمود یک کنیزک به جایخیش نبود این به جای جایخیش نبود یعنی از حدش خامزش نبود هر کرا جامعه ایزه مهرده دو چون که بد مهردی باز برو این هفته خرید بیرزن خار میذاشتی رو دوم شد نه از را بدر میکرد دو هفته بعد شهر بست که از شد دور به کمیزک فروش شد مشهور از برون هر کسی حسابی ساخت کس درون حساب را نشنا شخص بست جستجوی تافته شد بی مرادی که بازیافته شد نز بی تالعی به زن بشتا نکمیزی چنون که باید یافت دست از آلود دامنان میشوز، پاک دامن جمیلی می جوز. تا یکی روز مرد برد فروش برد خرشاه را رساند به گوش کام دست از نگار خانه چین خاجه با هزار هورلعین دست ناکرده چند گونه کنیست خلوخی دارد و خطایی نیز. هر یک از چهره عالم افروزی مهرسازی و مهربانسوزی در میانه کنیزکی چو پری برده نور از ستاره سحری سفته گوشی چو در ناسفته درفروشش به آب به جان گفته لب چو مرجان ولیک لولوبند تلخ پاسخ ولی شیرین خند چون شکر ریز خنده بکشاید خاک تا سالها شکر خواید گر چه خانش نواله شکر است خلق را زو نواله جیگر است من که این شغل را پذیر شدم زن و ظلف و خال خیره شدم گر تونی زن جمال و دل بندی، بنگری فارغم که بپسندی شاه فرمود کاورت نخواست بردگان را به شاه بردشناست رب آورد و شاه در همه دید. با فروشنده کرد گفت و شنید گرچه هر یک به چهره ماهی بود آنکه که نخواست گفت شاهی بود زان چه گوینده گفته بود خبر خوبتر بود در پسند نظر با فروشنده گفت شاه بگوی که این کنیزک چگونه دارد خود گر به دو رقبتی کند رایم آنچ خواهی به ها بیفزایم خواجه چین گشاده کرد زبان گفت که نوش شاه شهر لبان جز یکی خوی زشت و ننکوز کار زوخاه را ندارد دوست هرچه باید دلبری و جمال همه دارد چنان که بینی ها هرکی از من خرد به صد نازش بامدادان به من دهد بازش کابرد وقت آرزوخواهی، آرزوخاه را به جانکاهی وان که با او مکاس بیش کند زود غست که خیش کند بدپسند آمده از خوی کنی تو شنیدم که بدپسند بینید او چنین و تو چنان، بگذار سازگاری کجا بود در کار از من او را خریده گیر به داده گیرش چو دیگرانم باز به که از بیع او بداری دست بینی آن دیگران که لایق هست هر که طبعت بدو شود خوشنود بیبه ها در حرم فرستش زود شاه در هر که دید از آن پریان نامدش رغبتی و مشتریان جز پری چهره آن کنیز نخوز در دلش هیچ نقش مهر نروز ماند حیران در آن که چون سازد نرد با خانده است چون بازد نه دلش می شود از کنیزک سیر نه زعیبش همی خرید دلیر عاقبت عشق سرگرایی کرد خواب در چشم کت خدایی کرد سیم در پای سیم ساخت کشید گنبد سیم را به سیم خرید در یک آرزو به خود دربست کشت ماری و از اجده رست وان پری رخ به زیر پرده شاه خدمت اهل پرده داشت نگاه میگه این کنیز اشکالش این است که موقع آرزو خواهی که میشه راه نمیده و خب بلاخره این زن زیبا و ناب میگیره کسی میخره بندره میاره میخواد که ازش اشکام بگیره که میخواد که زندگی بکنه باشه خب نمیشه که اینه که فردا من میارن که این وز اخلاق خلصه درد ما نمیخوره دردم بردن و پس میگه که شاهد بسی که کنیز بروخته بود معروف شد به کنیزک فروش و کسی نمیدونست که اصل مطلب چی چی میگه شهد بس جست جوی تاخته شد این مرادی که بازی آفته شد نظر بیتالعی به زن بشه تا دلیل اینکه که معتقد بود که زن یعنی ازدواج زنی که بگیره از خواه در سرش میشه نه کنیزی کنیزه به درکوری پیده کرد دست از آلود دامنان میشست پاک دامن جنگله‌ی می‌جست تا روز، مرد برد فروش، برد خرشاه را رساند به گوش که از نگارخانه چین، خاجه‌ای با هزار خوردی. دست چند کون کنیز، خلخی دارد و خطایی نیست خلخ و خطام از شهرهای غوث خیزه‌است هر یک از چهره آلم‌حفروزی، مهرسازی و مهربان‌سوزی اون میون اینا در میانه کنینزکی تو پریب برده نور از تاقریز زی یکی میون اینا یک خیلی زیباست گرچه خانش نوابله شکر است خبر راز اون نوابله جیگره با این همه زیبایی و خوشخندگی و کنم که دلبری و دلفروزی ولی مردم از اون تلخ خامن. من که این شغل را پذیره شدم سان رو خوزر فخال خیره شدم و یقین دارم که اگه به تو بگن تو هم اون رو حتما نیفستن گفت بیارن شاه دست داد که بیارن نخواست یعنی برد فروش ربت و آورد و شاه در همه دید این استعمال تازه ایست برای شما دیدن در یه رفت دیگه هم باز بیارن. در چیزی دیدن این دقت ختم را کرد رفت و آورد و شاه در همه دید یعنی کیکی کی رو به دقیقت ماهی نکرد داشت. بافروشنده کرد گفت و شنید گرچه هر یک به چهره ماهی بود آنکه نخواست گفت شاهی زان چه گوینده گفته بود خبر خوبتر بود در پسند نظر ولی خب زیبایی خالی فایدنده گفت که اخلاق این خانم چه با فروشنده گفت شاه بگوی که این چگونه دارد خوی گر به دور اغبتی کند رایم آنچه خواهی بها بیخزاید اگه من میلم بکشی که بخرم بعد از گونه سن اخلاقش هرچی قیمت بودیم میده خاجه چین گشاده کرد زبان گفتی نوشبخ شه لبان جز یکی خوی زش وان ننخوز کار زوخاه را ندارد هرچه باید دلبری و جمال همه دارد چنان که بینی حال هر که از من خرد به نازش، بام دادن به من دهد بازش دیگه تو هم فکر کن که خریدین و بردی فرد سوه پس رو بردی حالا فرد سوه کابرت وقت آرزو خواهی آرزو خواه را به جان کاهی وان که با او مکاس بیش کند مکاس یعنی چونه زدن و استرال ورزیدن در خصوص معامله ما که با اون مکاس بیش کند زود قصد حلاک خویش کند اگر صاحبشم زیادی به خواهد اصرار کنه پوری میره که خودشو بکشه, بکشه, بکشه. سرمایه باطل میشید که قیمت قفل میره دیگه که بدپسند آمد از خوی کنیز تو شنیدم که بدگفت هم همین خانم بدپسنده هم آقا بدپسندی دو بعد پسند و ولش کن دیگه این چیزه تو شنیدم که بدفصندی نیست اون چنین و تا آنچنان بگذار سازگاری کجا بود در کار؟ از من او را خریده گیر به ناز داده گیرش تو دیگرانم با میگه که خواهی کن که اینو پست دید مدی خرید می بعدم پست به من هر که طبعت به دو بی باها در همه فرستش دود میگه شاه هر کدوم از نردید ده پستند بود جز چهره آن کنیز نخست در دلش هیچ نفچه مهر نروز. ماند حیران آن تو چون سال در. نرد با خامداست خامدست یعنی ناش. یه جای دیگه در خود روشیرین نظامی میگه که نرد از خامدستان کم توان برد. یعنی از آدم ناشی آدم نرد نمیتونه ببره. نه دلش میشد از کنیزک سیر نه سه ای همی خرید دلیر. آقابت خوش اومد ازش. خب جهنم اون یه آرزو رو درش به خودم میبندن کت خدایی یعنی خونه داشتن و زند داشتن زندگی داشتن میگه خاک در چشم کت خدایی کرد با اینکه این کنیز به درد اون کار نمیخورد و میگفت از اول ولی خب زیباییش خواهی شد من این این یه, این یه خواهیش رو از اون سرفنظر میکنم سیم در پای سیم ساخت کشید گنبد سیم را به سیم خرید در یک آرزو به خود در هست پشت ماری و زجده هایی رست اون آرزو رو درش و کرد و خرید